لم ولم تسر السيف خدلانا ولم جبين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام الحمد ثناء وصفات بخداوند بزرق وطوانا خداوندی که عالم بشریت را با فرستادن کتاب خود از جهل و ندانی به نور هدایت درآورد. و صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم برادران مجاهد و مهاجر و خصوص کسانی که رادیوی مارا میشنوند. و برنامه امروزی از جمعه تا جمعه خوش آمدید. حرکت اسلامی ازبکستان رادیوی صدای جند الله برنامه از جمعه تا جمعه را به زبان فارسی ادامه می دهد الله تعالی در مقابل عبادات، طاعت، هجرت و جهاد شما عجر بزرگ عطا فرموده در اخیر به همه ایما و شما نعمت شهادت را نصیب فرماید کاری عزیز زیاد پر حرفی نمی کنیم می رویم به طرف بخش اول برنامه در بخش اولی برنامه باز هم مانند هفته های گذشته چند سطر اندرز داریم که اینا که با خدمات خود تقدیم می‌نماییم میگویند که انسان دنیا دیده زیاد دروغ می‌گوید از همسایه بعد به خدا پناه بیبر شخصیت با لباس نیست نادان با وسیله نادان دانا می شود دوست را در تنگی و سختی شناختن دوستان را بزندن به کار آیند که بر سفره همه‌ی دشمنان دوست نمایند رحم کردن بر بدان ستم است بر نیکان با سیاست دشمن را نابود کن تا که بخیل نمیرد مالش بکسی نمیرسد مسکین خوش رفتار بهتر از پادشاه عاقبت است خوشی ها با نخوشی ها همراه است گنجمار و گل و خار و غم و شادی به همند عدب را باید از بی عدبان آموخت با بزرگان درشتی کردن حلاک شدن است بلی البته به همه ما شما معلوم است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند از خراسان بیرق های سیاهی میبر هیچ چیزی جلوی این بیرق را گرفته نمیتواند تاکی به ایلیا نصب کرده می شود بله حرکت اسلامی ازبکستان مطابق امر امیری خود با نیت عالی چند هفته قبل پروسه توزیع بیرق های سیا را به گروه های جهادی آغاز نمود اکنون نیست این پروسه دوما داشته چند روز پیش موظفین همین پروسه وارد مدرسه عبد بن زبایر گردیدند در آنجا به سرپرستی مدرسه بیرق سیار را تسلیم نمودند در این مدرسه یک برادر با احساسی ما در باره حقوق بیرق اظهارات خود را چنین بیان نمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن, الرحمن الرحیم الحمد لله وحله السلام و السلام من الله نبی بعده اما بعد سلام علیه هم و الله و برکاته ما امروز شهیدی خال هستیم مدرسه بنام عبدالله بن زبیر رضی الله عنه بر تقیق حرمان و دستوری أمير حركة إسلامية أوزبكستان. إن بارقة في بارقة توحيداس لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورجال. برين مدرسة ما الحمد لله تسبوري جشود. دكتور دا سين يكشان حليمي جوفانياس تيمكي. عزب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدينه ولو لا كره المشركون. سعید بالله، الله تعالی در این آیت کریمه مرحمت کرده می که او ذات، او ذات است که و رسول گرومیش را به هدایت و نور تا اینکه ظاهر و آشکار کند دین او را و خودی اون رسول صلی علیه و سلم را بر تمام عدیان باکیله اگرچه این را مشرکین بد می پیندران، لقصان می شماران لیکن این بیراخه که امروز طبقی امیری ما در حرکت حرکت اسلامی بکستان که سپاریدن در همه این ها تا این روز الحمدالله ما این بیراق را برداشته الحمدلله زیر این بیراق زیر این پرچم زندگی داریم و انشالله از این پس همه برادران دعوت میکنیم که کسی که زیر این پرچم زندگی میکند بهترین عزت را و بهترین کامیابی را ان شاء الله برخوردار می بشد و ان شاء الله ما با خون و جان خود این بیراخ را حمایت کنه تا اینکه در تمام روی دنیا بر بالای هم عدیان این در باشد. ان شاء الله السلام علیکم و رحمت الله و برحمت الله و بحمد الله غالب رسول الله سبحان الله و الله چی بزرگ دین الله سبحان الله و بحمد الله غالب است رسول الله تشکر می کنیم از بیرادر محترم ما که در مورد حقوق بیرق اسلام بر بالای مسلمانان خصوصا مجاهدین بیانات خود را اظهار داشت بمرگی من مگو عهدی جوانیس یقین دارم شهادت زندگانیست بمرگی من مگو عهدی جوانی در جریان هفته گذشته مجاهدین حرکت اسلامی ازبکستان یا قربانی بزرگی را در راه الله تعالی دادند این قربانی عبارت از شهادت چند برادر مهاجر می باشد که در اواخر نزدیک هجرت نموده بودند واقعه از این قرار است روز پنجشنبه گذشته چند برادر مهاجر ما مطابق فرمان قماندانان حرکت اسلامی ازبکستان در هنگام رفتن به سوی موعسكر مورد حملات پهپادهای بی پیلوت قرار گرفتند که در نتیجه پرتاب چهار راکت همه جام شهادت را نوشیدن این شهدای ما در اواخری نزدیک به حرکت ما پیوسته و با برادران دیگری خود یک جا قبل از چند ماه به تعلیمات نظامی پرداخته بودند بعد از گذشت تقریبا ده روز مورد حملات های جیت قرار گرفتند که در نتیجه چهار برادر ما به شهادت رسیده بودند ولیکن از چند ماه این سو مطابق فرمان قماندانان مو عسکر را ترگ گفته بودند ولیکن اخلاص و شوق و که ایشان به شهادت داشتند الله تعالی دعای ایشان را اجابت نموده در وقت اندکی ایشان را به درگاه خود خواست Yäkin Doram shahadat zindakoni Hayati joidona, darsi tezäst Ziii qboolam, tiukhush harfe niishanis Hayati joidona, Zikbolam eqbalam ti khosh harfanishaniis ti khosh goftan hakeem misham bin gadar shirin bayaniis ti حکم بینگه دران شیرین بیانیست بمرگی من مگو عهدی جوانیست یخین دارم شهادت زندگانیست باز هم خوش آمدید در هفته های گذشته موضوع ما شیطان بود که از آن حقیقت شیطان و روش‌های بکارگیری شیطان در گمراه کردن انسان را به خدمت شما تقدیم نموده بودیم در این هفته همان موضوع را ادامه می‌دهیم که اینک نوبت به های نفوذ شیطان بر انسان رسید البته این موضوع را همکار ما ادامه می‌دهد بسم الله الرحمن الرحیم های نفوذ شیطان در انسان به حقیقت راهای نفوذ شیطان زیاد هستند که خلاصه کردن آنها مشکل است و ما تعدادی از این راه‌ها را بیان می کنیم اولاً یکی از راه‌های نفوذ شیطان ایجاد فتنه و آشوب در بین مسلمانان و همچنین سوءظن در بین آنان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که مسلم آن را روایت کرده است می‌فرماید: <Sus> Inna iblisä kuidu ja isaiin yabuduhuus salihon, walaikin ysohjaa binehimmuun vittahirish. Behaakkaat, syytaan az inki bandegani salih, kudauwand, euraa Kunand no noumied shudhaast. Woli humieshaa talashast, ta dare binehän fytnä, avaashub, vajan ja jadal ajajat kunnad. Jani saai minkonad ka kina binehän, dushmani, kiina, fytnä, و بعد این ترتیب با هم دیگر مشغول شوند و در روایت دیگر آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند اینه قد یعیس الشیطان ان یعبدوه الصالحون فی جزیرت العرب در حقیقت شیطان از اینکه بندگان صالح خداوند در جزیرت العرب یعنی شبه جزیره عربستان او را عبادت کنند ناامید شده است فانیان یکی دیگر از راه های شیطان آرایش و زیبا جلوه دادن بدعت برای انسان است شیطان همواره در تلاش است تا بدعت را برای انسان زیبا و خوب جلوه بدهد مثلا به او می گوید مردم در این عصر دین را ترک کرده اند و واقعا دعوت و برگرداندن آنان آنان بدین مشکل است پس امیدوارم با اضافه کردن به بعضی از عبادت هایی که ما انجام می دهیم مردم به سوی دین و دینداری برگردند یا به دیگری به عبادتی که از طریق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است اضافه می کنند مثلا شیطان بدین طریق عمل کرده و می گوید زیاد کردن بر کارهای خیر خوب است پس به مقدار و حد حدود آن اضافه کن و آن را به شکل عبادت جلوه می دهد و در نتیجه آن را به عنوان عبادت جدیدی معرفی می کند یا بعضی ها میگویند مردم از دین دور شده‌اند شاید ما با آوردن و ساختان بعضی احادیث آنان را بترسانیم و بعد برگردانیم لذا احادیث را که احترام می کنند و آن را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت می‌دهند و میگویند ما دروغ می گوییم ولی به رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ نسبت نمی‌دهیم بلکه به خاطر او دروغ می‌گوییم حدیث را می کنند اختراع می کنند تا به وسیل آن مردم را از آتش جهنم بترسانند از یک طرف آتش جهنم را به طور غریب و ترسناکی برای مردم جلو سازی کرده و از طرف دیگر بهشت را عجیب و غریب فرض می کنند در حالی که ما می دانیم که عبادات توقیفی هستند یعنی همان طوری که از طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده اند یا آن گونه از جانب خداوند سبحانه و تعالی بسوی رسول الله صلی اللہ علیه و سلم آمده اند قبول کرده و میپذیریم. پذیریم ما نمیتوانیم نمی از آنها کم و یا زیاد کنیم و آن طوری که دوست داریم آنها را تغییر دهیم. در غیر این صورت اگر تغیر و تحولی در آنها صورت بگیرد بدعاد و از کارهای شیطان است ثالثا رسیدگی کامل به یک چیز و عدم رسیدگی و کوتاهی در موارد دیگر د یک، ارتباط با فرد فردی مثلا مرتکب گناهان و نفرمانی های زیادی می شود و در عین حال نماز می خواند و معترف است به اینکه نماز ستون دین است و اولین عمل از اعمال انسان که در روز قیامت از آن سوال می شود نماز است لذا معتقد است که مرتکب شدند به بعضی گناهان لطمه به او وارد نمی سازد در این حالت نماز را توری برای خود تعریف می کند که بزرگترین عبادات تا بدین ترتیب کوتاهی خود را در مورد سایر عبادات دیگر توجیح کند و با این کار می خواهد نماز را وسیله برای پوشاندن و در حقیقت مخفی کردن کوتاهی ها و ارتکاب معاصی و گناهان خود قرار دهد. درست است که نماز اساس دین است ولی کل دین نیست با این روش و طرز فکر شیطان پرده بر کوتاهی و سسته های او کشد در بعضی موارد شیطان با این طریق در شخص نفوس پیدا می کند که آن شخص می گوید الدین المعامله دین یعنی ارتباط و برخورد درست با مردم و مهمترین چیز آن است که با مردم خوب باشی، رفتار درست داشته باشی، با آنان دروغ نگویی و آنان را فریب ندهی اگرچه نماز هم نخانی زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید الدین المعامله دین یعنی ارتباط و برخورد درست با مردم و یا شخص دیگری میگوید مهمترین چیز نیت پاک است. من هیچ وقت حسد که و دشمنی نسبت به مردم در دل ندارم. در حالی که هیچ گونه عمل صالح هم انجام نمی دهد. فقط به این مورد که همان نیت پاک است اکتفا می کند. از موارد دیگری که بعضی از مردم با آن معتقدند این است که تدریس و خواندن قرآن به زیبایی و درست عدا کردن حروف و مخارج آن را بر هر کار دیگری ترجیح می دهند، بسیاری از کارهای مهم دیگر را ترک کرده و انجام نمی دهند، زیرا او این اعتقاد را در ذهن خود جای داده است. که خواندن صحیح قرآن برای او شی از هر کار و مسئله مهمتر است. و بدون شک صحیح قرأت کردن قرآن تنها قضیه مهم و موجود در اسلام نیست، و اینکه با آن هیچ گونه اهمیتی هم ندیم، اشتباه است. Wali az Masai al Muhim Inastki Sahikhandani Quran Hamrab Allah Watajwidrat Dharma Kabil Sajir Amal Muhimi Digar Dar Islam Karardat. Wa anra wasilei Barahi Kutahi wachashimpushi az muhimmati Digar Din Karar Nadihim. Wa anra Wasilei Baray Kutahi Wachashimpushi az muhimmati Digar Din Karar Nadihim. 2. Irtabat ba Ishtimaw. در مسئله رسیدگی و اکتفا کردن به قضیه و کوتاهی یا انجام ندادن سایر موارد مهم دیگر قضیه را به شکل در سطح اجتماع نیز می توان مشاهده کرد به عنوان مثال یک نوع گرایش فکری و جریان حرکتی که در سطح جامعه وجود دارد معتقد است که مهمترین چیزی که باید بدانیم وقایع و اتفاقات در بین مسلمانان و دشمنان آنان است یا به عبارت دیگر مهمترین چیز مسائل سیاسی است زیرا ما الان در عصر سیاسی زندگی می کنیم و زمان زمان دراویش و تقی و غیره نیست و کسانی که معتقد به این نوگرایش فکری و جریان حرکتی هستند در رابطه با کمونیسم و قادیانیت آگاهی های زیادی دارند اما اگر در مورد اسلام از آنان سوال بکنید هیچ گونه اطلاع و آگاهی ندارند عکس گرایش فکری بالا گروهی هستند که قضیه عبادت را نسبت به مسائل دیگر برتری داده و فقط با آن می و معتقدند که مهمترین چیز ارتباط تو با الله است و از مهمترین آنها نماز بوده و این که تو زاهید، پارسا، متقی باشی و تمام مسائل دیگر را به عبارت قربانی و فیدایی مسائل عبادتی بکنی و جماعت دیگری که الان در دنیای اسلام وجود دارند معتقدند که Muhimtarin cheez it tahambastagi ast, Khudawanda Tabaragatalami Farmayat, Aru de Villa Himinashekani Dajim, Waartasimu Bihablilla Hijamiram Wala Tafarla Ku. Wahamagi Barismani zanid. Changzanid. Wain Mauzura as Muhimtarin Masail Hatta Az Masail Akhidatiham Muhim Tarmidanand, Hatta Bakasani Akhidishan Ba Kaidma Mutafawat Ast, Suhvatkarda, Weir Tabat Barkarar Mikunand. مدعی این هستند که مهمترین کار این هست که هر دشمنان ما بر ما یورش آوردند با هم متحد و یک دست باشیم در حالی که اعتقاد صحیح آن است که در دفاع از اعتقاد و دین با هم متحد و یک دست باشیم نه اینکه که علاوه بر اختلاف و قاید با هم در ایجاد بینظمی و آشفتگی متحد باشیم بنابراین باید حد توازین و برابری را در رابطه با این مسائل و قضای ایجاد در نظر بگیریم زیرا همانطور که گفتیم یکی از راه های شیطان در انسان رسیدگی و پرداختن به یک طرف قضیه و کوتاهی در انجام جنبه های دیگر قضایه می باشد. این بود موضوع امروزی. انشاءالله بقیه موضوع را در برنامه های بعد ادامه میدهیم. دهیم. جمعه خوشی داشته باشید. على السماء اعطيها هذه الشهاده يا ابطال من قد اکنون نوبت به بخش اخیری برنامه ما رسید که طبق معمول از سحاولات یک هفته شما را با خبر می سازیم افغانستان بستشاش روی اول مطابق 18 فوریه در ولایات بامیان علسوالی ورس و پنجاب در اثر برباری های زیاد 6 نفر کشته شدند. 27 ربیل اول مطابق 19 فیبرواری. در اثر انفجار یک ماین کنار جاده در ویرایت قندهار، گلوسوالی شاه نظر به گفته های حکومت که از زابی افغانستان چار فرد ملکی کشته شدند. ولیکن موامیدون که مجاهدین افراد ملکی را هدف قرار نمی دهند چونکه رسانه های جهانی همه به منافی کفر فعالیت دارند از این رو تلفات خودشان را اعلان نمی نمایند پندهر یک برادر استشهادی با نام الله از مجاهدین امارات اسلامی در این ولایت عملیات استشهادی کرد که در نتیجه 10 تن از آیساب و 6 تن از پلیس افغانی کشته شده و چندین تن آنان مجروح گردیدند و همچنان حظ موتر حربی ایشان نیز از بین رفت اند. با تاریخی مذکر در ولایت دای کنده حکومت یا رسانه های از کوشته شدن سیتن در اثر برفباری خبر دادند البته از این جمله نوتنی آنان از ولسوالی سنگ تخت می باشند 28 ربیان اول مطابق 20 فبرواری در ولایت هرات یک عراده موتر اکمالاتی عساکر ایتالیاوی در راه تصادم نموده داخل آب افتید که در نتیجه اسکر ایتالیایی ایتالیاوی به حلکت رسیدند به تاریخ مسکر در ولایت قندهار و ولسواری سپیم بلدک یک فردی پلیس بالای نیرهای ناتو و گلو نموده دو تنی آنان را به قتل دسانده است به تاریخ مسکر در حوزه چاری ولایت قندهار یک برادر استشهادی با استفاده از موتر مملو از مواد منفجره عملیات استشهادی نمود که در نتیجه؟ که در نتیجه آن نظر به گفته های حکومت مرتد کرزی، یک مامور پلیس کشته و چهار تن دیگر آنان مجروح گردیدند. در همین حال حکومت کرزی اضافه کرده می در این عملیات یک منزل حکومتی نیز از بین رفته است. ببینید دروغ حکومت را در حالی که یک منزل از بین رفته ولیکن یک مامور پلیس کشته شده است. کابل 29 ربیل اول مطابق 21 فوریه 2500 نفر افراد ملکی دست به تظاهرات زده در پیشروی مرکز حربی بگرام آمدن که علت این تظاهرات این است که یک فرد از ایشان چند روز قبل توطه از قرآن این را از داخل کسافات شهر پیدا کرد این مظاهره کنندگان مرکز حربی بگرام را با سنگ و چوب حدفت قرار داده شعار می که ما امریکا را از بین خواهیم برد جنرال جان آلن، فرمانده کلی ناتو از مظاهره کنندگان معذرت خواسته میگوید این کار سهوه صورت گرفته است. در امین حال به تاریخ 22 فیبرواری یک روز بعد از این واقعه در تمام نقاط افغانستان نیز مظاهره براه انداخته شد. مثلا در شهر کابل مردم با قهر و غذابی شان موترهای غربی ها را آتش زدند. در این واقعات تقریبا سه تن کشته شدند. در شهر جلالاباد دو تن کشته. دوازده موتر حریق و هفتن دیگر بد دست حکومت افغان اسیر گردیدن در شهر لوگر 6 تن کشته دوازده تن اسیر گردیدن در ویلایت پروان 8 تن کشته شدن همینطور در ویلایت بغلان 4 تن کشته شدن در همین روز بار دیگر جان علن با بیانیه خود گفت که ما اکنون تعلیمات جدید را به نیروهای خود آموزش میدهیم که در آن از تویهین به شعائر اسلام جلوگیری صورت یکمه ربیت ثانی مطابقی 22 فیبرواری در ولایت ننگر نیروهای امریکایی توسط تایراحی جیت یکی از مدارس دین را در هنگام تدریس هدف قرار دادند در این بام مردمان هشت دختر، سی طفل، یک استاد و یک خادم مدرسه به شهادت رسیدند رسانه های کفری از این واقعه سخنی اند. پاکستان دو ربی سانه مطابق 23 فیبرواری در شهر پیشاور در اثر یک عملیات استشادی 15 تن افراد پولیس کشته و سی و تن دیگر مجروح گردیدند 27 ربیان الاول مطابق 19 فیبرواری در ارگزه منطقه دابوری برادران مجاهد ما بالای پوسته دشمن عملیات چریکی را انجام دادند در این عملیت از صلاح های پیکا، آر پی جی استفاده نمودند مسافه بین دشمن و مجاهدین تقریبا 400 متر بود. تا کنون از طلافت دشمن احوال دقیقی در دست نیست بیست و هشت ایرابیل اول مطابقی بستی فیبرواری باز هم اروگزی برادران نشانزنی ما از مسافه 350 متر توسط سلاح دراز نوف یک اسکر دشمن را به قتل رساندن سوریا به تاریخ مذکور در شهر حمس سوریا در نتیجه بان حکومت ظالم آن کشور پنج تن افراد ملکی کشته شدند در همین حال در شهر دمشق یک فرد مسلح دو فرد دولتی را بازر گلوله به قتل رساند یک کمی ربیستانی مطابق 22 فیبرواری در شهر خمس دو جورنالیست غربی که به طور مخفی وارد سوریه شده بودند در نتیجه پرتاب بم بدستی در خانه های خود به قتل رسیدند گفته می شود یکی از ایشان بنامی مری کارلونز زن بریتانیاوی می باشد که از سوی حکومت فرانسا منحیس کمرمین فیرستاد شده بود و اخیرین سخنیوهی که در بی بی سی بنشر رسیده میگوید من اکنون در پیش جسد یک تفل در سوریه قرار دارم بمباردمان از هر طرف این شهر ادامه دارد لندن دوی ارابی آسانه مطابق بستی سای روز در شهر لندن یک کنفرانس جهانی سرد گرفت، در این کانفرانس چند چار کشور شرکت ورزیده در مورد حرکت شباب سومال سخن گفتند. اولین کاری که در سومال انجام می دهیم این باشد که حکومات سومال را در شهر مقدیشو قوت می بخشیم تا که ایشان احساس خطر ننمایند. و یکتن از اشتراک کنندگان عرض نمود که چنانچه به افغانستان داخل شده بودیم و سومال نیز داخل خواهیم شد ولیکن در مقابل بعض از اشان گفتند ما چنانچه با دخول خود در افغانستان خسارات زیادی را متحمل شده بودیم در سومال نیز همان خسارات را متحمل خواهیم شد لیبیا یکومی رابیسیونی مطابق 22 فیبرواری در شهر مصراته درست در قبل اولین انتخابات بعد از سقوط حکومت قذافی به راه شد در این حال مجاهدین و شورشیان بزید حکومت سوریه مخالف انتخابات بوده و خواهان ادامه جنگ در آن کشور میباشند مکسیکو 28 ربیع الاول مطابق 20 فوریه در این شهر گروه‌هایی وجود دارند که به خاطر تعصبات قومی و منطقوی با هم در جنگ و جدال هستند و این جنگشان حتی در داخل زندان نیز به وقوم پیوانداد در همین حال در شهر منتری در داخل یک زندان بین زندانیان جنگ صورت گرفت که در نتیجه 44 تن کشته شدند البته گفته می شود که اسباب جنگی ایشان سنگ چاقو و آهان بوده است این یک خبر تازه نیست بلکه سال گذشته نیز همین واقعه در زندان‌های آن شهر رخ داده بود که در آن 124 تن کشته شدند لبنان 29 ربیلوال مطابقی 21 فیبرواری بعد از سی سال سکوت در این شهر جنگ مذهبی بین شیعه و سنی آغاز یافت بعد از 24 ساد مقاومت شدید رسانه های می‌گویند که در این واقعه سی تن کشته و دو تن دیگر مجروح گردیدند، و تحلیل کنندگان می که حکومت سوریه شعه ها را در جنگ علیه سنیها کمک می نماید آلمان یکمه روی مطابق 22 فیورواری یک برادر مسلمان او در محکمه قرار دارد به علت این که وی از طریق سایت انترنتی به جهاد دعوت می نمود اسم این برادر حاری و اسم سایت وای اسلام هی که اونیون می باشد دشمنان اسلام در مورد انسایت می میگویند که در آن افلام استودیوی جندالله حرکت اسلامی ازبکستان وجود دارد هنگامی که از این برادر سوال شد که آیا تو با این کار راضی هستی وی گفت بله ان الله همه کفار را به قتل خواهیم رساند این برادر تقریبا به 5 سال حبس محکوم گردید ایراق با تاریخ مذکور در شرق بغداد در اثر انفجار یک ماین در پُست امنیتی دولت 15 تن کشته و 20 تن دیگر مجروح گردیدند با تاریخ مذکور و مصفه 600 متری در شرق افریقا یک تایاره امریکایی سقوط نموده با چهار تن اثر نشانانش به حالکت رسید در هفته گذشته شما را از ریهای ابو مسعب سوری از زندان سوریه با خبر ساخته بودیم ولیکن این خبر از سوی هیچ یک از رسانه‌های کفری منتشر نگردید فقط در نزد مجاهدین این خبر وجود دارد که ابو مصابی سوری اکنون در نزد ایشانند در این حال تحلیلگران حرکت اسلامی ازبکستان در این مورد میگوین این خبر واقعیت دارد اما علت اعلان ننمودن حکومت این است که ابو مصابی سوری با کدام شخص حکومتی تبادله گردیده است یکی از این تحلیلگران میگوید ما تجارب زیادی را در جنگ پاکستان کسب نمودیم و دینیم که حکومت پاکستان در صورت شخصی مهم در بدل افراد حکومتی از رحایی آن شخص مردم را باخبر نمی سازد من فکر میکنم که این واقعه ها نیز مانند همین است شنواندگانی عزیز این بود داشته های برنامه امروزی تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند منان می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تفرح فقط جئنا بجيش أحمد يكون للموت كما تهفو شرب الخمرة آهل لنيل شهادة في ساح أقصان الأبي آهل لنيل شهادة في ساح أقصان, أقصان الأبي زمجل وأطلب مسمعي زر الشاش أبي زمجل وأطرب مسمعي يا رقص الصر الشاش ابي زمجر وأطرب مسمعي يا رقص الصر الشاش ابي زمجر رثاء الله